أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلا الله على سيدنا محمد وآله الطاقم الله أمه العلم الدرس السابع أربعة ش معصومة أربعة عشر معصوماً علیهم السلام علیف امامه، نحنو نعتقد نحنو معنیش ما هستیم خب؟ ما, ما نحنو معنیش ما نعتقد یعنی عقیده داریم به امامتی یعنی به امامت دیگه واضح هم تمام شد؟ ایف السلام <سؤال> <سؤال> نحن نعتقد بإمامة 12 إماماً معصوما عليهم السلام درست بإمامة 12 إماماً معصوما عليهم السلام لنبي الخاتم يا لنبي الخاتم درست لنبي الخاتم یا لنبیل قاتل خلیفه تن را یاد گرفتیم ما معتقد به امامت دوست داریم که معصوم هست هستیم دوازده داریم که داریم هستن هستیم برای که این دوازده امام امامت اینه ای کار چیست لنبی خلیفه خلیفتن که این دوازده امام برای پیامبر خاتم یا خاتم خلیفه هستن یقید میکنیم به این کلمه توجه کنیم خب ما یک مسئله امامت داریم متوجه میشین چه میگین؟ یک مسئله امامت داریم، یک مسئله خلیفه بودن داریم. دوازده معصوم. صحبت نکنی. دوازده معصوم هم امامان و هم خلیفه هستند. متوجه شدین چی میگم؟ امام را میدن معنی چیه؟ امام به معنی رهبر پیشوا، خلیفه به معنی جای نشین متوجه شدیم چه میگیم؟ این دو نقطه داره خب؟ نقطه شون اینه. بعد جای دیگه ای که میگه ما خلیفه هستیم ای وقتی میگیم این دوازده نفر پس خلیفه بودن دیگرها را قبول؟ نداره و از طرف امروزه به تعداد مردم امام میگن این امروز از جمله خب اتفاقا بین خلی موشم و شعیان هم رواج هست و مثلا میگن امام خمینی خیلی معرفه نه ولی امام خمینی آیا خلیفه هست نیست برست شد این امام به معنی رهبر هست مثلا در آیت الازمه سید محمد مرحوم شیرازی میگفت الامام سید محمد شیرازی برست خب وقتی امام میگن یا الامام السيد علي السيستاني درست شد بهش امام میگن ولی اون امام به اون معنی امامی که ما شما می، می عقیده داریم نیست متوجه احبرست. شدیم؟ آره برای احترام میشه گفت برای رهبر بودن میشه گفت درست شد؟ معصوم آ اونام امامن مون تا اون وقت امام معصوم و غیر معصوم یا وقتی اینجا کلمه خلیفه هم داریم یک تفاوت داره اونا ولایت از جانب خداوند متعال داره بالای ما ولایت معنیش چیست؟ ولایت معنیش است. یعنی اگر امام معصوم یک چیز دستور بده، ما و شما نمیتوانیم در مقابلش نبیدیم متوجه شدیم چی میگم؟ یعنی حتی امام معصوم اگر دستور بده خود را بیکش، باید بیکش، خود را بیکش نفر دیگر بیکش، باید انجام داد خواهی خواضح امام معصوم خود به خود چونی چیزی را نمیگرده درست و یک چیز دیگر هم باید یقین داشت اینکه اگر امام معصوم به یک حکمت و یک دلیل کسی را دستورش چونی میبیدن حتماً دوباره به هم حالت اول بر میگرده. برسته دو مورد رو به شما نفر میکنیم که از این کسمت برمیش یا نفر آمد در یک که یکی ای از این گفت که اینقدر از یاد داری که چرا قیام درست برسته چرا بر علیه ظالمین قیام نمونی که حکومت ظاهره را بگیری اه... وقتی که چون این چیزه به امام گفت ما اونجا یک تنور بود، امام علی السلام گفت که برو داخل تنور، آتش بود دیگه این نفر فوالش خراب شد بود، نه؟ برای شد نظرت خواهی هم ظاهران کرد همه هم یک از شهرین دیگه اومد ما بشت دستور بود برو داخل تنور نفر هم کفشش رو و زیر بقل و بده رفت داخل تنور در شد؟ جالب هم میگه سر تنور رو هم بخص واس امام با امون نفر که گفته بود چرا قیام نمونین راحت آرام در قصه مون هیچ چیزی این گار نشده. اون نفر دیگه دلش هم گفته چه بول میشه که اوخ سخ درست شد؟ بعد از چند لحظه یا دقیقه پیش صدا میگه فلان بیا. از داخل تنور بلند میشه خوابایشان هم تک میزنه اینو بدونین که چیزی شده باشه. بعد امام علی السلام به همین نفر که گفته بود چرا قیام نمونین میگه چند نفر رقمی شه احمد خراسان داریم؟ اون نفر میگه کی رقمی نیست، خیلی کم اگر باشیم برست این طور است امامتی که ما شما در دوازعی امام معتقدیم از این طریق هست صحیح شد؟ ولایتش بر ما واجب است امرش بر ما واجب است ولو به ما دستور بده در اون آتش بره که چون این دستور نمیده مگر این یک مسئله باشه، و حتما این دستورش به ما جوز نفع هیچ ضرر نداره. ببین اون نفر که داخل تنور رفته بود او خود ضرر اما چی یک امتحان محکم رو هم سپری کرد؟ مقامش هم رفت بالا درست این طور امام اگر به ظاهر به ما دستور خطرناک میده؟ این بدون شک خطر بماند در نداره جز اینکه مقام را بالا بیبره درست شد؟ این طور است موارده دیگه هم از گلا نحن نحنو نعتقیم به امامت اثنی عشر امامن معصوما عليه السلام. درست بالا اربعت عشر پاینش اثنی عشر درست شد؟ اثنی اینجا شما اثنی بگیم بعض جاها اثنا هست خواه؟ ها. ولی اینجا اصناهی بگیم دلیلش رو باز انشاءالله بعدا عربی که رسیدیم باز میگیم برسید؟ نحنو نعتقد نعتقدو به امامت اثنی عشر امامن معصومن علیه مسلام لنبی الخاتمی خلیفتن صلاب خود برسید؟ برسید؟ برای پیامبر خاتم خلیفه هستند جانشین هستند یکی بعد از دیگری برای چه؟ برای پیانبر خاتم لی یعنی برای خوا... پیانبر خاتم خلیفه هستن یکی بعد از دیگری خلیفه هستن خلیفه با اربعت عشر معصومن علیه مسلام اربعت عشر معصومن علیه مسلام المعصوم الاول النبي الاكرم سيد محمد المصطفى معصوم اول ما خود پیامبر اکرم هست درست شد صلوات الله و خب اینجا هست میخواین بنیسین میخواین ننیسین المعصوم ثانی معصوم دوم فاطمة الزهراء عليه السلام قرة عين الرسول صل الله عليه و آله سیدت یعنی نور چشم حیمبر. راسته؟ قرة عين الرسول یعنی نور چشم پیامبر, و نور چشم پیامبر. بانوی بانوان همه عالم. بازار بانوی بانوان یا رسید بانوی بانوان عالمی یعنی هم در این عالم هم در عالم یه های دیگر هردو عالم هردو عالم بلکه عالم‌ها متوجه شدیم اثنا عشر امامان عليهم السلام اثنا عشر امامان عليهم السلام المعصوم الثالث الإمام الأول، المعصوم الثالث، الإمام الأول، الإمام أمير المؤمنين، الابن بقال بن عليه السلام ابن عم النبي، وزوج ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. ميجين <تصفيق> معصوم سوم امام اول امام امير المؤمنين علي السلام امير المؤمنين یعنی فرمانده اهل ايمان امیر فرمانده امير فرمانده فرمانده امير و فرمانده مؤمنين حضرت امام علي عليه السلام ابن عم النبي يعني یعنی فرزند عمuye پیامبر فرزند عمuye پیامبر، و زوج ابنته و همسر یا شوهر دخترش فاطمه زهره علیها السلام همسر دخترش فرمانده مؤمن حضرت معنوی هستم شوهر دختر فاطمه زهرا و شوهر دخترش فاطمه زهره علیها السلام درست شد درست شد ها اینجا یک چیز را دقت کنیم ما وصفه داریم امیرالمؤمنین این امیرالمؤمنین مخصوص حضرت علی ابن طالب علیه السلام لعنت الله علیکی متوجه شدیم چی میگیم؟ غیر از امیر حتی با یازده امام دیگر ما اجازه امیر المؤمنین گفتن نداریم چی برسه به دیگر را؟ درست یکی از شعیان بود به یکی از معصومین امیر خطاب کرد امام بهش دستور داد یکی از به یکی از امیر المؤمنین خطاب کرد امام علیه السلام بهش فرمود که چون چیز نگو امیر المؤمنین وصف مخصوص امام علیه, علیه السلام هست متوجه شدیم؟ حتی 11 امام دیگر بهش امیر المؤمنین نمیگیم چی برسه به دیگر طالباک اضربوا نهاركم احسن المعصوم الرابع الامام الثاني الامام حسن المجتبى عليهم صلاه المعصوم الخامس الامام الثالث الإمام الحسين الشهيد عليه السلام، المعصوم السادس، المعصوم السادس، الإمام الرابع، الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، المعصوم السابع، الإمام الخامس، الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين عليهم السلام. المعصوم الثامن، الإمام السادس، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام. المعصوم التاسع. درست؟ نه. الإمام، امام شربیعی شما خانم. امام العاشر درست شما گوش کنین نو میخوانی المعصوم التاسع الامام السابع الامام موسبن جعفر السلام. درست شد باید و موارد چرا رعایت کنیم دیگه نه آره المعصوم العاشر المعصوم العاشر، الامام الثامین، الامام علي بن موسى رضي الله عليه السلام. ثامین، س، س، س. عاشر؟ المعصوم الحادي عشر. کجایش هم؟ المعصوم الحادية عشرة خلنا مفجع الحادية عشرة. المعصوم الحادية عشرة. عشر؟ عشرة. المعصوم الحادية عشرة الإمام العاشر. الإمام علي بن محمد الهادي عليه <تصفيق> عليهما السلام. آه الإمام العاشق. <تصفيق> <آه، ساشة. تصفيق> الإمام التاسع. الإمام التاسع. محمد بن علي الجواد عليهما السلام. حسن نعم. المعصوم الثانیه عشر المعصوم الثانیه عشر ببین اونجا اثنه عشر داشتیم نه؟ اینجا، انجو... اینجا ثانیه الثانی، یعنی طریقا، الثانی، زیر یان دیبن نکتر المعصوم الثانی، عشره الخالق عندك صوت موجود صدا داری خانم خالق صدا داری نویشتیم المعصوم الثانی المعصوم الثالث عشر المعصوم الثالث عشره الامام الحادی عشره، الامام حسن ابن علي العسكري عليه السلام. تمام شد؟ بچهای، سمع صحبت با ما، با هر چی میدن با ما بینیم اون که ما میخوانیم امور بینمیسین این دیارا چی میگه؟ حرکات رو بینمیسین که بیتونیم بردان بخونیم خان؟ میدنیم 13 14 المعصوم ال... المعصوم الرابع 14 رابع عشر الامام الثاني عشر الامام م خا م دال المهدي ابن ال... حسان العسکری علیه مسلم و عجل الله یعنی قسمت خوب دقت کنید که عجله نخوانید خو؟ عجل. عجل خوب؟ عجله عجله الله عجله فراجه فراجه خوب دقت کنید که مگید فرجنا نخوانید خوب؟ فراجه فراجه نه عجله نه عجله میدنین عجله معنیش چی عجله که هی گردان داشته باشه؟ عجله معنیش با که چی مونه؟ سعیه شد؟ پس عجله خیره میرسه شد عجله و فراجه عجله و فرجه شریف خب سوال نکردون که چرا میم خ خواندیم؟ او نام حضرت امام اعرص علیه و سلام هم نام پیامبر اسلام است. درست و ما فعلا نام حضرتش رو نباید بر زبان بیاریم تا هنگام زهور، انشالاتا. با امید آن روز که با شما در هنگام زهور باشیم، چیزی تا. و صلّ الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.